فصل دوازدهم هم بیشعور بیچاره کاری نیست که آدم نتواند خانواده اش را مجبور به انجام آن بکند. اگر پاش افتاد یک بطری اسید لول بازکنی را هم باید یک ضرب سر کشید کیتی یک بیشعور تحت درمان احتمالا بی بیچاره نسبت به سایر بی شعورها کمبودهای عاطفی بیشتری دارند اونا مثل شوره سر میمونند که دائم به محیطی تیره چسبیدن و اگر از اونجا به زور اخراج شند هم در عرض چند دقیقه باز میگردند در وهله نخست شاید این افراد مثل بیشعورها به نظر نایان و فقط آدمهای ضعیف کمبونیه و بی به نظر برسند که نمیتونن روی پای خودشون بایستن کسایی که همیشه به یکی احتیاج دارند که تکیه گاهشون باشه، تره خشکشون کنه و اموراتشون رو اداره کنه. البته این فقط فیلمشونه، فیلمی که به اندازه دیدن یک جریمه سه دلاری تخیلی و غیر واقعی است. حقیقت اینه که این افراد واقعا قوی و نیرومندن، اما دریافتن که با تظاهر به ضعیف بودن میتونن به آسونی قدرت زیادی به دست بیارن. مشاور خانواده معروف لوکرشی یا در مقاله‌ای با نام خانواده بیشهور سالار که در مجله یونانی خانواده درمانی به چاپ رسیده گزارش میده که خانوادهها که بسیاری به خاطر سیطره‌ی بیشهورهای ضعیف و انگل به نابه هنجاری و بحران دچار شدند. این بیشهورها، اغلب اوقات در میان اعضای خانواده و یا جمع دوستانشان با نیاز همیشگیشان به توجه و تلاش بی پایانشان برای تسلط بر دیگران زورگویی می کنند. نوعی ترهم خواهی و ارعابی. آنها انتظار دارند تا دیگران جانشان را هم برای موازبت از آنها فدا کنند. من این آرزو را سندروم توقع مرگ مادر می نامم. البته مادر یک بیشعور بیچاره دست آخر هم به مرگ پناه خواهد برد. قدرت ضعف می میتواند عظیم باشد. بسیاری از بیشعورها میدانند که چطور تا آخرین واحد انرژی را در هر موقعیتی استفاده کنند. اگر اون قدری که توقع دارند مورد توجه قرار نگیرند، دیگران رو به بیتفاوتی در برابر نیازهاشون متهم میکنند. اگر به آن میزانی که کمک خواستن به اونا کمک نشه، آاسیان میکنن اگر به نرسن اون قدر تمارض میکنن تا دیگران مجبور شن، کارشون رو رها کنن و با اونا توجه کنن. یه زن خانهدار که از دست مادرش کشش ماه پیش به نزد او اسباب کشی کرده بود و به سطوح اومده بود میگفت او می از هزار چیز مختلف به صد راه مختلف بیناله. اما همه اینا برای یک منظوره او میخواد بر همه چیز تسلط داشته باشه. بیماری منبع قدرت بزرگی برای بسیاری از این آدم هاست. سوزش ها، درد ها و حالت تهوعها به طرز موجز آسایی در مواقع لزوم ظاهر میشن. گاهی آدم شک میکنه که نکنه سلامتی مطلوب در نزد این افراد درمان شدن باشه. بیشعور بیچاره علاوه بر بسیاری از لوازم بیشعوری مثل نالیدن، خلافکاری، ترسیدن و ترساندن از یک سری ابزارها و روشهای مخصوص به خود نیز بهره میبره که یکی از برجستهترین اونا دیوانسازی نام داره. دیوانسازی هنر دیوانه کردن مردمه. این کار با هوشمندی و استمرار در خواسته های غیرعقلانی، نالیدن مدام و اشکالگیری دائمی انجام میپذیره. بیشعور بیچاره از شما گلایه میکنه که هرگز برای او چندان کاری نکرده اید و هیچگاه به قدر کفاگت دوستش نداشتید. او شما را به خاطر اینکه به اندازه کافی وقت سرفش نمیکنید ملامت میکنه و بعدم ازتون میخواد که از جلوی چشمش دور شید. اما گونه که دزد مون در کتابش با عنوان درمانده یا دشمن درجه یک جامعه خاطرنشان می سازه همین برای دیوان کردن هر کسی کافی است گیج کردن افراد با پارادوکس های غیر ممکن هم یکی از مهارت این افراد در دیوان ساختن دیگران محسوب می شه. اونا از ما انتظار دارن که هیچگاه از گل گذاری های دائمیشون گله نکنیم و به رغم انجام تمام خرد فرمایشاشون همیشه برای استقلال و اتکای به نفس اونا احترام قائل باشیم. از اونجایی که قواعد رو اونا تعیین میکنن ما هیچ شانسی برای برد در بازی اونا نداریم. در موارد خانوادگی دیوانساز معمولاً کسیه که وصله خانواده نیست مثل مادر شوهر یا مادر زنی که با خانواده یکی از فرزندانش زندگی می‌کنه. در عالم تجارت دیوانساز معمولاً جزء افرادی که خیلی بی سر و صدا توی دفترها کار می‌کنند، اونا هر روز راهی پیدا می‌کنند تا کمتر و کمتر وظیفه‌شون را انجام بدن. وقتی هم که این مسئله به اونا گوش زد بشه میگن که عاشق خدمتا اما حجم کاری که به اونا محول میشه اونقدر زیاده و روز به روز هم بیشتر میشه که انجام همه اونا از عهده یک نفر خارجه اگر کار به توبیخ و اخراج بکشه ناگهان داستانهای های زننده از تبعیض یا سوء استفاده های جنسی از خودشون در میارن و تهدید میکنند که علیه کارفرماهاشون شکایت خواهند کرد در جامعه، دیوان ساز، انگلیست هرفهی که همیشه معترضه که دیگران حقش رو خوردن، در حالی که خود اوست که دائم به حق دیگران تعرض میکنه. همانند بیشعورها که پشت میز نشین، بیشعورها که بیچاره هم در سوء استفاده از زمان استادن. میتونن آنچنان فسفس فس کنن که حل از اون در مقابلشون فانتوم به نظر برسه. در خانه همیشه آخرین فردیان که وقتی خانواده میخواد بیرون بره حاضر میشن. هر بار که به دستشویی میرن برای دیگران یک قرن به حساب میاد میتونن یک ساعت کار خونه رو به که تمام روز کش بدن در محل کار به طور معمول همه رو منتظر میذارن مهمترین مهارتشون اینه که همیشه گرفتار و مشغول به نظر بیان در حالی که تقریباً هیچ کاری انجام نمیدن. بیشعور بیچاره، آنچنان نقش آدم مظلوم و فداکار رو خوب بازی میکنه که هیچ کدوم از بازیگران برنده اسکار آسکار نمیتونن بهتر از اون بازی کنن. این افراد یاد گرفتن آنقدر سوزناکرف بزنن و آنقدر آه بکشن که همیشه خسته و از پا افتاده به نظر بیاند. اونا قادرن چنان زیرکانه به خستگی تظاهر کنن که همساگشون به فکر بیفته که نکنه به بردگی گرفته شدن. دقیقا همونطوری که خانم پاپولاپالیس نشون میده این بیشورها از رویارویی با با هم برای جلب توجه و برانگیختن ترحم دیگران ابایی ندارن و به همین خاطر گهگاهی دست به خودکشی میزنن. البته همیشه قبلش مطمئن میشن که کسی سر بزنگاه خواهد رسید و اونا رو نجات خواهد یکی از بیمارانم پس از اینکه که زن بیشعورش بر اثر مصرف زیاد کرم ضد تروک فوت کرد می گفت او خوناشامی بود که هر روز از اشتباه ها و شکست های من تغذیه می کرد. حالا دیگه خدا به داد شیطان برسه. خدا رو شکر.